داستان سیزدهم، آسمون بریسمون باف به هر زحمتی بود خودم را به دومین واگن تراموای رساندم. پریدم روی پله در عقب. توی یک دستم کیف بود و توی دست دیگرم پاکت یکی از مسافرها آرنجم را گرفت خودم را بالا کشیدم توی واگن پر آدم بود کیپ تا کیپ ایستاده بودند مدتی کسی حرفی نزد بعد تک کتوک شروع کردن به حرف زدن بعد همه ساکت شدند و فقط یک نفر بود که حرف می زد و بقیه گوش می دادند آن که حرف می زد آسمون بریسمون باف بود در راه روی عقبی ترانوای همه به حرفهای او گوش می دادند هر ازگاهی هم اگر چیزی بود که نمی دانستند و می خواستند بدانند از او سوال می کردند سوال هنوز تمام نشده آسمون بریسمون باف شروع می کرد به جواب دادن. مثل تیر حرف می زد. همه چیز را می دانست. آسمون به ریسمون باف را ورنداز کردم. چهل چهل و پنج ساله به نظر می رسید. لباسهایش نکهنه بود، نه نو. پیراهن بیکره را یا زنش دوخته بود یا دخترش. به آبدارچی ها اما نه از این آبدارچی معمولی. از آنها که آبدارچی شخصیت های مهم بودند. از حرفهایش پیدا بود سالهاست هر روز چند روزنامه را از هر مقاله تا آخرین آگهی یا آخرین صفحه هایشان میخواند روزنامه ها رو هم لابد هر روز مجانی به دفتر میآورند گمان نمیکنم به عمرش مدرسه رفته باشد سعی کردم پیش چشمم تصور کنم که آسمون به ریسمون باف هر روز چطور روزنامه می؟ خاند. توی راهروی دراز و باریک پشت به دیوار روی چهارپایه مینشیند. یک آرنجش را به لبه پنجره راه را, را میدهد عینکش را که از بساتی خریده به چشم میزند و روزنامه را دستش میگیرد از اولین صفحه و اولین سطرها شروع می کند کلمه ها را یکی یکی هجی کنان به هر زحمتی هست میخواند چون به زحمت و سنگینی میخواند آن خانده انگار از حزم رابع میگذراند و از برش میکند. 5 سط که به زور و ضرب میخواند یا زنگ میزنند یا چراغ رنگی بالای دری که رو به رویش نشسته روشن می شود. روزنامه را روی لبه پنجره و عینکش را توی جیب میگذارد و وارد اتاق می شود. وقتی هم که برمیگردد دوباره روزنامه را به دست می عینکش را به چشم میزند و مدتی توی روزنامه می گردد تا ادامه مطلب را پیدا کند. پیدا می کند و از سر روزنامه را با صدای بلند میخواند این برنامه هر روز تا عصر ادامه دارند درست نفهمیدم آسمون به باف کی و چطور در راهروی عقبی تراموای شروع کرد به حرف زدن. وقتی گوش تیز کردم ببینم چه میگوید. داشت برای کسانی که راهروی عقبی را پر کرده بودند درباره مرلین مونرو حرف میزد از اون زن نیست که فکر میکنین آرتیستا مهرم محرم نا حالیشون نیست. اما یکی خیلی عاقله چطور یعنی خیلی آقله؟ خب آقله دیگه آقل بودنش از اینجا معلومه که با یه پیره مرده عروسی کرده اما مرده از اون مردای درست و حسابیه با کی عروسی کرده؟ خدمت آقای خودم عرض بکنم با یه نویسنده خیلی منشور عروسی کرده یارو یه جوری داستان می نویسه، هر کی می خونه نمی تونه جلو رو بگیره. گریه می کنه ها؟ چه جورم؟ یه صفحه که بخونی، غیر ممکن عشقه در نیاد. از قلم یارو خون می چکه نداشت. همچی می دل سنگ و آب می کنه. دمشون گرم، هم یارو نویسنده هه، هم زنه. مون رو با همچی کسی عروسی کرده. بعد این یارو رو سر قضیه ها تو آمریکا دادگاهی کردن. یکی از مسافرها پرسید: قضیه سیاه دیگه چیه؟ آسمون بریسمون باف کشو به تنش کمی به عقب خم شد و در حالی که به مسافرها که توی راهروی تراموای گیر کرده بودند از بالا نگاه می کرد گفت: آها و اما قضیه سیاه ها. واسه خودش حکایتیه رئیس جمهور آمریکا میگه سیاه ها حق ندارن برن دانشگاه سیاه ها هم میگن یعنی چی؟ منشورترین بکسارا از ما باشه منشورترین دونده ها از ما سیاها باشه پرچم آمریکا رو ما تو المپیک بالا ببریم اون وقت نتونیم بریم دانشگاه حتی رفتن سازمانملل اعتراض کردم. اما این آمریکا هم کار درستی نمیکنه. کنه آقا اصل قضیه چیز دیگه است. رئیس جنبور امریکا میگه همه چی رو مساوات باشه سیاها برن مدرسه سیاها غیر سیاها هم برن مدرسه غیر سیاه. چون که تو آمریکا یه فرقی هست بهش میگن گلوگلان این دیگه چه فرقیه؟ آها و اما این فرق. حضای این فرقه گل و گلان روزا میخوابن شبا هوا که تاریک میشه روی سرشون ملافه میکشن میشن این مرده ای که از تو گور پاشده بعد میریزن تو خیابونو هر جای سیاه ببینن دخلشو میارن سیاپوستا کاری نمیکنن؟ آها و اما این مسئله سیاه ها هم اگر یه جای خلوتی یه پیر زن سفید ببینن انتقام کل سیاه ها رو ازش میگیرن پس بگو اونا از ما بدترن <تصفيق> آها و اما قضیه بدتر بودن هر ملتی واسه خودش دردی داره به خدا راست میگه خب ایش جوورم میریدین واسه چی سیاه را امایت میکنه مگه خودشم سیاه بوسته آسمون بریزمون با کمی فکر کرد بعد گفت سیاه اصیل نیست یه خورده قاطی داره سیاه خالص نیست همین چند وقت پیش یه سیاهپوست رو تو آمریکا واسه اینکه از یه زنه یه دلار دزدیده بود به اعدام با صندلی الکتریکی محکوم کردن صندلی الکتریکی دیگه چه سینقهییه آها و اما قضیهٔ صندلی الکتریکی جونم اون بگه این صندلی الکتریکی مثل تیربارون ماست یا مثل دار زدن آمریکا یا دلنازو کن آدم را وای ساده نمی عجب عجب. بله تمدن چیز دیگه است جان هم آدم همونجا که نشسته بی هوا یه دفعی می کشن. یعنی میخوان خوان سرپایی خسته نشه وقت. بخد یه, بخ. یه دلار. آره؟ و اما قضیه دلار؟ این دلار دلار که میگن گرونترین پول دنیاست ما هم پولمونو با دلار تنظیم کردیم قبلا یه دلار تو بازار آزاد پونزه لیره بود اما از وقتی تنظیمش کردن رسیده به 20 لیره اینجوری بازار آزاد از بین رفته یعنی چی از بین رفته خب داداش دولت رفته سر وقت بازار آزاد اینجوری مگه بازار آزاد میمونه این دلار از فرانک هم گرونتره؟ آها و اما قضیه فرانک فرانک میگن پول فرانسه هست توی این مملکت فرانسه یه مارشال دوگل هست تو جنگ بینال دوم ملت فرانسه حرف این مارشال دوگل رو گوش نکرد اگه گوش میکرد فرانسه از مصر بگیر بیا تا جبل و تارق و از اونور از جزائر من جزائر رو میگرفت اما فرانسوی ها گوش نکرد بعد جونم واسه بگه وقتی آلمانیا اومدن و فرانسه رو گرفتن این فرانسویا ها عقلشون اومد سر جاش به مارشالدوگول گفتم بیا به دادمون برس بشو رئیس جنبور ما مارشال دو هم گفت اگه قانون اساسی رو عوض نکنی رئیس جنبورتون نمیشم. خیلی خوب فرانک چی شد و اما قضیه فرانک همان موقع یکی دیگر گفت پس فرانسوی ها هم قانون اساسی دارن؟ آسمنگریسمون باف به طرف او برگشت و گفت هر ملتی بالاخره واسه خودش قانون اساسی داره خب واسه چی عوضش میکنن آها و اما قضیه عوض کردن توی فرانسه چیزی به اسم شرم حیا نمونده وقتی هم شرم حیا نباشه قانون اساسی و عوض میکنن تا دست و پای آدما رو ببندن و نذارن کار خلاف بکنن پس تو فرانسه شرم و نمونده آره آره، اما بپرس واسه چی نمونده؟ همش واسه خاطر توریست چونکه چون که خیلی توریست میره فرانسه. زنهای فرانسوی واسه اینکه توریست یاد بیاد مملکتشون لباسهای راحت و آزاد میپوشن. برا همین شرماهای حیا نمونده و شرماهای حیام که از بین رفت ارزش فرانک هم اومد پایین. وقتی هم فرانک اومد پایین، دو گل اومد سر کار. یکی از مسافرها گفت حالا آلیم شد، اما این کار آمریکایی خیلی زشته مملکت به این بزرگی این اتم رو کشف کرده اون وقت و اما قضیه اتم قضیه اتم دیگه چیه؟ جونم واسطون بگه، این اتم یه چیزی قد نوک ناخن اما اولش آلمانیا اینو کشف کردن آلمانیا هم خیلی زرنگن و اما قضیه المانی این آلمانیا ها اتمو کشف کردن، اما نتونستن ازش استفاده بکنن. هیتلر اگه یکم دندون رو جیگر میذاش و سر میکرد، اتمو واسه استفاده حاضر میکردن. بعدش امریکایی اومدن و هرچی دانشمند آلمانی بود با کارخونهاش عمر رو بردن آمریکا. ترکوندن مگه نه؟ قضیه ترکوندن فرق میکنه، و اما قضیه ترکوندن. آمریکا یا به ژاپونیا گفتن یا جزیره رو به ما میدین یا بمب اتمو میترکونیم. ژاپونیا ها اگه تو جزیره‌ن. آره تو جزیره‌م. ملت ژاپون همش رو آبن. ژاپون همه جاش جزیره است. بعدش جونم واسهتون بگه یکی از مسافرها پرسید: قضیه کره چی شد؟ یک دفعه دیدم به آخرین ایستگاه رسیده ایم. میخواستم در ایستگاه ارنکای پیاده شوم، اما قرق حرفهای آسمون بریسمون باف شده بودم. و تا بستانجی آمده بودم. از ترانوای پیاده شدیم. مسافرها هر کدام به سمتی رفتند. آسمون بریسمون باف به با آدمهای دورو برش میگفت. آها، و اما قضیه یک من هم برای اینکه چند ایستگاه برگردم، سوار ترانبایی شدم توی راه با خودم می گفتم مطالعه کار سودمندی نیست. آدم اهل مطالعه همه چیز را می دن. زیر لب گفتم آها و اما قضیه مطالعه <تصفيق>